چقدر کنکور برای خانواده ها مهم است. برای اینکه در آینده دانش آموزان تاثیر دارد. فکر می کنم آزمون ورودی دانشگاه در ایران مشکل است. درست است. کنکور امتحان بسیار مهم و دشواری است. کسانی که دیپلم دارند می توانند در کنکور شرکت کنند. بله، کسانی که دیپلم دارند و یک سال در مدارس پیش دانشگاهی درس خانده اند. کنکور در چه زمینه است؟ سوال های کنکور از کتاب دوره دبیرستان و کتاب های پیش دانشگاهی انتخاب می شود. پس برای هر رشته سوال های مخصوصی لازم است. بله، مثلا سوالهای رشته ریاضی از سوالهای رشته علوم تجربی متفاوت است. این آزمون در همه جای ایران یکسان است؟ بله، این آزمون هر سال در یک زمان معین در شهرهای متفاوت ایران برگزار می شود. پس دانش آموزان ایرانی باید خیلی درس بخوانند.